سلام دوستان با یه پادکست دیگه در خدمتون هستم امروز یه سپرایز دارم برای هم خودم هم امیدوارم برای شما یکی از دوستان که با ما داخل کانال آشنا شده متخصص هستن در زمینه تغذیه و گیاخاری ته صحبت هایی که با هم دیگه کردیم من ازشون خواهش کردم که به واسطه تخصصی که در این زمینه دارن وقتی رو به ما بدن و با ما همکاری رو داشته باشن ایشون نویسنده کتاب ریثینک یور دایٹ هستن که در سال 2014 منتشر شده به زبان انگلیسی و بعد از 5 یا 6 بار ویرایش کتاب حال اتفاق افتاده تو اسه سال گذشته به زودی قرار هستش که این کتاب با عنوان خوردار نیک منتشر بشه. ایشون فعالیت‌های دیگه‌ای هم در حوزه تحقیقات و ویراستاری، در همین حوزه داشتن و حوزه روابط عمومی و بازاریابی و برامریزی بازاری. حالا من از خواهش می‌کنم که خودشون رو مفصل‌تر معرفی کنن و تجربه این مدت و اینکه چطور با این فضا آشنا شدن و اینکه چی شد که این کتاب رو نوشتن و اگر دوست داشته باشن چطور میخوان بالاخره از این دانشی که کسب بیارن در این حوزه و تخصصی که کسب کردن ما رو بهربند کنن و مطالبشون رو و اندیشاشون رو در اختیار ما بگذارن جنب آقای مهین قهرمانی سلام عرض میکنم و خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین خودتون رو شروع کنید و من دیگه صحبت کوتاه سلام عرضم کان خدناس شما و همه های عزیز خیلی متشکرم از این فرصتی که به من دادین و خیلی سپاسگزارم از دوست شما پشت. من موهین قهرمانی هستم 23 ساله و اگه بخوام خیلی الله خداسه در این داستان گیا خور شدنم و داستان اینکه چطور من وارد این فعالیت ها شدم توضیح بدم من همیشه از بچگی دغدغم دق این بود که چطور میشه سالمتر ز... سالم زندگی کرد چطور میشه اصلا بیمار نشد چون ما و بخصوص مادرم خیلی به تغذیه و سلامتی اهمیت میداد و نسبت به اطرافیان و نسبت به حالا عموم جامعه ما تغذی سالمتری داشتیم و مثلا ما کمتر از روغن و غذای سرخ کرده استفاده میکردیم کمتر گوشت قرمز میخوردیم و تازه اون هم اون در اون زمان من چون متوضد خورمابات هستم لورستان خب در اون جامع مصرف گوشت خیلی بیشتر حتی از امروزش بود و هنوزم اونجا مصرف گوشت بالا به صورت سنتی ولی خب ما باز خانوادهی بودیم که تغذیمون به نسبت اون جامعه خیلی سالم تر بود با این حال خیلی همچنان مریضی های مختلف داشتیم خیلی سالم نبودیم مثلا خود من از بچگی خیلی زیاد دوچار سرمخوردگی های م... مکرر می‌شدم و یک مقداری این گوارشی گوارچی خفیش داشتم خیلی زیاد حالت تعفو و احساس بی‌قراری به این دست می‌داد در دو سال آخر همه چیز خواریم یعنی در سن 16 تا 18 سالگی خیلی زیاد به سردرد می می‌شدم خیلی کم حساده شده بودم زیاد احساس می می‌کردم که این باعث شد که من به ذخره به صورت ناخوشاگاه متوجه این بشم که یک اشکالی حتما در کار هست و مثلا پدر من از 40 سالگی که به دیابت مبتلا شد خب من می‌دیدم آثار منفی دیابت رو در و به علاوه پزشکانم که میگفتن هیچ راهی نداره و هیچ وقت درمان نمیشه و قابل پیشگیری هم نیست ولی خب من همچنان یه ندایی در درونم میگفت که این قابل قبول نیست که آدم اگه مثلا قرار 80 سال عمر کنه سال حالا هر چقدر از چهل سالگی به بعد باید دیگه بشینده منتظر بیماری باشه این, بر این منطق برای من پذیروفتنی نبود چون میدم می که خب اگه انسان قرار باشه بیشتر از نیمی از عمرش رو با مریض، مریضی سخت بگذرونه و تازه قبل از اونم خیلی سال نیست قبل از اون هم به دخل خود من در جوانی همون مشکلی که خدمتون رو کردم این باعث شد که من شروع کنم به تحقیق و مطالعه بیشتر و از اونجایی هم که در رابطه با عوارض داروهای شیمیایی هم مطالعه کرده بودم هم خودم تجربه کرده بودم که من مثلا هر وقت سرما میخوردم زیاد اگه دارو قرص و دارو آمپول مصرف می‌کردم همیشه بدنم زیبتر می می‌شد یعنی دفعه بعدی دوباره سرماخوردگی با شدت بیشتری برمی‌گاش و طول فاصله بین دو, دو سرماخوردگی خیلی کمتر می‌شد و تصمیم گرفته بودم که بدنم رو قوی تر کنم، موقعی که لازم بود بیشتر از داروهای گیاهی استفاده می‌کردم که عوارض کمتری دارند، اما شروع کردم به مطالعه تحقیق و این سوال ذهنی در ذهن من خیلی پررنگ بود که آیا واقعاً راهی هست برای پیشگیری از هر نوع بیماری و آیا واقعاً راهی هست که انسان اصلاً هیچ گونه مریضی کوچک و بزرگی، خفیف بود. چه مریضی خفیف چه مریضی حاد نشه؟ این سوال با من همراه بود و خیلی به من انگیزه میداد که بیشتر تحقیق کنم و من در این در اینترنت شروع کردم به سرچ کردن در رابطه با داروهای گیاهی خلاصه درمان های طبیعی و در سال 90 بود که از طریق سایت آقای هورسن در هلند با فلسفه خامگیاهخوری اولین برخورد نشدم من قبل از اون البته یه خیلی مختصری با گی داشتم ولی خیلی تو بهرش نرفته بودم. اون هم مثلا شنیده بودم که در کشورهای دیگه یه عده به خاطر حقوق ایوانادی، عده به خاطر معتزیز گی میشن در همین حد و هیچ مذیعت خاصی و خیلی چیز پررنگی حالا اون موقع من مطالعه نکرده بودم، نمیدونستم اما در سال نوت و در فصل بهار هم بود اتفاقا که اون موقع من چون قبلش به رشته نرم افزار خیلی علاقه داشتم اما بعد از این این مشکلات پیش اومد برای مویسه تغییر فراز نشیب ها در زندگی دیگه مسیر زندگی موض شده بود و دوست داشتم بیشتر روی سلامتی تحقیق کنم و در مورد سلامتی بیشتر فعالیت کنم. اون سایت دکتر خورسند تجربه خودشون رو در رابطه با خامگی آخاری و تجربه خوردن غذای پخته به پرندایی که فقط غذای خام خورده بودن تا قبل از اون و بعد از اینکه این, این پرنداز چقدر مریض شدن و و بعد خدا همین آقای خوصن در سنین او سنی جوی به عفونت کللی مبتول و وبیمارسانی داخل خارج از کشور هم هیچ درمای نمیتونن براش پیدا کنند و اونجا با خامگی آخوای حالا بهبود پیدا میکنه تجربهش کامل نوشته که من در کتابم هم, هم در نسه فارسی هم در نسه انگلیسی آوردم. این اولین این در واقع شروع آشنایی من با خامگی آخاری از اینجا شروع شد و بعد از اون دیگه من همچنان که کتاب‌های مختلف می‌خوندم، و منابع مختلف می‌خوندم خامگی آخاری در ذهن من بود، یه پس زمینی در ذهن من داشت و اینطور بود تا اینکه در پاییز سال 90 من با کتاب آقای آوانسیان که اولین کتاب به زبان فارسی در رابطه با خامگی آخری است آشنا شدم یعنی تو اینترنت فایده پی دی پیدا کردم شروع کردم به خوندن و خیلی قلم ایشون خیلی شیوا است و خیلی آدم احساس صمیمیت میکنه باشون خیلی صادقانه نوشته تجربه اشو و خیلی هم البته یه سری جا مثلا حرفاش تنده ولی من خیلی به دلم نشست به دلیل اینکه خیلی صادقانه بود این صداقت رو من در این کتاب حس کردم و تجربهش رو بالاخره نوشته بود و بعدا که من حالا پرتجو کردم از خامگید آخران قدیمیتر دیدم که بعد همه هرچی نوشته واقعیت داشته و این باعث شد که من انگیزم برای این تغییر تقضیم و تغییر سبک زندگیم خیلی بیشتر بشه و از همون روز که این کتاب رو خوندم تصمیم گرفتم دیگه تقضیم رو تغییر بدم بالاخره تا جایی که میتونم خب اول من محصولات حیوانی رو حذف کردم گوشت و لبنیات رو و تا حد ممکن مثلا تا حد 50 و 60 درصد رژیمم رو سعی کردم میوه باشه و غذاهای خام گیاهی اوایل خانواده نگران بودن مثلا باورشون چک و تردید داشتن خب طبیعی هم بود چون که ایج اطلاعاتی نداشتن حتی خود من که بذخه تحقیق کرده بودم با با تحقیق این روش رو پذیرفته بودم و به نظرم منطقی هم بود اما خب هنوز تردید داشتم چون انجام نداده بودم در احمد اینطور بود که من دیگه ادامه دادم و یواشواش خانواده رو هم آشنا کردم با فلسفه خانگی آخاری از طریق فیلم مستند و کتاب هایی که بود و اونا هم خیلی استقبال کردن خوششون اومد حتی امتحان کردن خانگی آخاری رو هرچند بعدها برشون به نظرشون سخت بود و رها کردن اما حداقلش این بود که دیگه خیلی چیزا در خانواده ما اصلاح شد مثلا مصرف میوه خیلی بیشتر شد و الان مثلا صبحانه همه اعضای خانواده خانواده میوه میخورن لبنیات حذف شد و خیلی از غذاهای ناسالمی که قبلا میخوردن رو دیگه الان من بعد از اون بیشتر رفتن در رابطه با خامگی آخری جستو جو کنم بیشتر هم در منابع انگلیسی زبان دیدم که حرفای اینجا هم مثل هم علم پزشکی و تغذیه که گاهی تناقض های خیلی زیادی هست که مثلا هر کسی چیز میگه و آدم سردرگم میشه باله. در بین خامگی آخران و گی خاران هم و نظرات که درباره باره تغذیه داشتن این رو من دیدم و خب این باعث شد که من تصمیم بگیرم که خودم تجربه کنم هر چیزی رو بیشتر مطالعه کنم و که دیگه با اطمینان به این سبک زندگی ادامه بدم. و به همین خاطر تصمیم گرفتم که یک کتاب در این رابطه بنویسم که اون چیزی که به من اثبات شده اون چیزی که به من ثابت شده و ازش مطمن شدم رو در کتاب بنویسم زمینه اینکه چیزهایی اون که شک دارم با شک و تردید بنویسم یعنی نه به عنو شروع کردن به نوشتن یک کتاب زبان فارسی که عنوانش بود گیاخاری بهترین راه به سوی کمال که اگر شما در اینترنت سرچ کنید هنوز هم توی بعضی سایت ها این فایل پی دی هست میتونید دانلود کنید و این کتاب رو در واقع من نوشتم که با روش درگیری یادگیری هم اطلاعات خودم رو بیشتر کنم همین که هرچی یادگرفتن رو با دیگران به اشتراک بذارم. و این کتاب رایگان منتشر شد پی دی افش بعد از این دوبار ویرایش شد تصمیم گرفتم به زبان انگلیسی هم بنویسم چون هم خواستم که در سطح جهانی فعالیت داشته باشم یعنی برام انگیزه خوبی بود که هرچه بیشتر, بیشتر به فعالیت های مرتبط با تغذیه و گی ادامه بدم و همین که اصلا یک حسین ماجر جویانه ای بود که من خیلی دوست داشت تجربهش کنم بسیار علی جنب قهرمانی اگر موافق باشید با همگیه میان برناماره میریم و برمیگردیم بعد کاملا با باشم در توحفل اغول صفحه دیویست و و از امام حسن مجتبی علیه السلام شده است هیچ قومی با همدیگر مشورت نکنند مگر آنکه به رشد و کمالشان هدایت شوند کتاب <م Goddess> <mentorsim within the month> رو به زبان انگلیسی نوشتم و اول یک عنوان خیلی تودانی داشت که راستش رو بخواین الان هم اون عنوان یادم نیست چون اون عنوان به زبان انگلیسی بود خیلی تودانی بود و من بعدها دیگه تصمیق عنوانش هم عوض کنم به خاطر اینکه یک چیزی می عنوانی رو ما نیاز داشتیم که شفافتر و گویاتر باشه اون کتاب انگلیسی باعث شد که من با افراد فعال خامگی آخاری در بقیه کشورها بیشتر در اطلاعات قرار بگیرم و تبدال اطلاعات و تبدال تجربه کنیم و نهایتاً در سال 92 که دو بار اون کتاب انگلیسی ویرایش شده بود و منتجرش بودیم. من در جشنواره جهانی یاخوری که اون سال در کشور مالزی بود در سال 2013 به عنوان یکی از سخنرانان پذیرفته شدم و به جشنواره رفتم در اونجا جشنواره چون جشنواره خام یاخوری نبود این جشنواره یاخوری بود به طور عام و فقط من و دو تا سخنران از آمریکا بودیم که خام بودیم توی اون جشنواره اونجا من بالاخره هر چقدر که تجربه کسب کرده بودم تا اون زمان رو توی حدود یک ساعت زمان به من داده بودن صحبت کردم خیلی ها هم موافق نبودن با صحبت های من به دلیل اینکه خب تجربه خامگیاهی رو نداشتن یا اینکه اصلا خامگیاهی براشون جذابیت نداشت یا اینکه بیشتر در دقیقه موتزیس حقوقیات داشتن حالا روی بحث سلامتی گیاخواری خیلی متمرکز نشده بودن ضمنه اینکه در همون جشباره هم مثلا می هم میدید غذای سرخ کردن گیاهی غذای قضایی هم بعضاً داره صرف میشه چون بداخل همه جور افراد اونجا بودن لزومن این نبود که گیاخوارانی که به خاطر سلامتیشون این روش رو انتخاب کردن اونجا حضور داشته باشن هر ارحال من هم در جواب مخالفت هایی که بام شد گفتم که به علاوه این تجربه‌ای که من کسب کردم و نتایجی که واقعاً در در هم در زندگی خودم اتفاق افتاده و هم با خام گیاهخواران دیگه یک که تجربه داشتیم و ازشون اطلاعات گرفتم یاد گرفتم، این من به دست هاوردن. و حالا دیگه اینکه هر شخصی چه چیزی زور بپذیره و نپذیره یا چه روشی رو بخواد انتخاب بکنه، خب اون دیگه یک شخصیه. بعد از اون جشفار من دید خیلی خوبی برای فعالیت های بیشتر در رابطه با خامگی آخری چه در ایران چه در جهان هست و تصمیم گرفتم که ادامه بدم همچنان به فعالیت های مرتبطی که داشتم. کتاب انگیلی سیم رو تصمیم گرفتم که یک بار دیگه کامل و خیلی بهتر ویرایشش کنم که از دوستان خارجی خیلی کمک گرفتیم و یک ویراستار انگلیسی برای کار ویرایش کتاب استام کردم و هر قسمت از کتاب رو که ویرایش کردیم میفرستادیم برای متخصصین خامگی در کشورهای دیگه که بخونن نظر بدن و نسخه ورژن نهایی رو که من بعد از همه اصلاحاتی که انجام شد در کتاب اضافه میکردن خب بنو انگلیسی دیگه بالاخره چندین عنوان براش پیشنهاد شد با مشورتی که با دوستانی که تخصص زبان انگلیسی داشتن یا بعضی از دوستان خارجی انجام دادیم در نهایت عنوان ریتینک یور دایئیت انتخاب شد به دلیل اینکه هم یک جمله خیلی گویا هست و هم اینکه عنوانیه که هدف کتاب رو می‌رسونه یعنی به این شکل که در واقع من هدفم اینه که قبل از اینکه اصلا به اون خواننده بگیم که چه روشی رو انتخاب کنه ازش بخواییم که خودش بازنگری کنه خودش تجلیل نظر کنه در سبک زندگی و خوراکش و همچنین کلمه دایت رو به این خاطر من در کتاب گذاشتم که چون دیدم رژیم‌های مختلف انواع رژیم‌ها چه در سیستم هم چیز خاری چه حتی در سیستم خانگی آخری وجود داره که اینا معمولاً در کتاب مدت ممکنه نتیج خوبی بدن اما در دراز مدت در پی دارن. و مردم هم که خیلی رژیم‌های مختلف رو دائم دارن تست می‌کنن و اکثران نتیجه نمی‌گیرن به همین خاطر این عنوان برای کتاب انتخاب شد و کتاب منتشر شد و حالا متاسفانه به دلیل هایی که برای ایرانیا بود ما خیلی چالش داشتیم برای مارکتیم و بازاریابیش خیلی محدودیت رو داشتیم و هنوز هم نتونستیم به موفقیت لازم برسیم، اما اون کاری که من قلباً دوست داشتم انجام بدم رو خوشحالم که انجام شد و تونستیم بازخورد‌های خیلی خوبی از خواننده بگیریم و هم در سایت گودریدز که شبکه اجتماعی کتابخون‌ها است هر کتابی که اونجا لیست شده از جمله کتاب خود من افراد میتونن بعد از مطالعه برن اونجا ن، فیدبکشون رو بنویسن یا اینکه حتی برای خود من نوشتن که اگه پیشنهادی انتقادی نظری چیزی هست نسخه فارسی کتاب رو بعد از اون دوباره نشستم و پارسال برای بار پنجم از یعنی از, سال، از اواخر سال نوت که شروع کردم به نوشتن اون نسخه پارسی پارسال برای بار پنجم ویرایشش کردم که، و تکمیلش کردم که متاسفانه تو این مدت به دلیل مشغله های مختلف و درگیری ها و مشکلاتی که بود هنوز نتونستیم متشرش کنیم ولی امیدوارم به زودی بتونیم اون رو منتشر کنیم و الان عنوان نسخه فارسی کتاب،, کتاب رو گذاشتیم خوردار نیک که در واقع بیشتر این به این فلسفه خامگی آخاری و اون دید کلنگری که من بهش معتقدم رو بیشتر در خودش نشون میده البته خامگی آخاری با وجود همین مذایی که داره به این معنی نیست که این تنها روشه یا همه باعثی از این روش پیروی کنند بلکه مهم اینه که یک رژیم سالم و متعادلی انتخاب بشه چون در بین گیاخواران هم متاسفانه مریضی ها زیادی دیده میشه حتی در بین خیلی از خام گیاخواران و مریضی ها همچنان یک سری مریضی ها ریشکن نشده اگرچه حالا ریسک خیلی از بیماری ها مثل بیماری قلبی خیلی ش قابل توجهی پیدا میکنه در گیاهخوری یا در خام گیاهخوری اما همچنین کس نارت های دیگه مرضع دیگه حتی گیاهخواران رو داشتیم که سرطان داشتن و فوت کردند در همه دنیا به همین خاطر لازمه که حتی گیاهخواران هم بیشتر به جنبه سلامتی و جنبه علمی قضیه غزی... توجه داشته باشن حداقل اطلاعات کامل رو داشته باشند به دلیل اینکه خب این تغییر درش زندگی که ما انجام دادیم همه ماها چادر خانگی یا چه یا یک روند آگاهانه بوده و خب یعنی از یک آگاهی شروع شده یک آگاهی اتفاق افتاده که ما به نتیجه رسیدیم که بایستی یه تغییر در سبک زندگیمون بدیم و خب چه بهتر که این آگاهی ادامه پیدا کنه یعنی نشه همچنان ادامه پیدا کنه و بتونیم بهترش کنیم و در این چند سال من تجربه خیلی خوبی داشتم در برخورد با بیماران مختلف در برخورد با افراد مختلفی که گیخری یا خام گیخری میکنن چالش هایی که باش مواجه بودن سختی هایی که داشته به لاظ جسمی چه به ترک سختی ترک عادت ها و بیشتر فشار های ذهنی و روانی و چه به اجتماعی که وقتی آدم سبک زندگیش رو عوض میکنه در یک جامعهی که خب بداخلی یک سبکی قالب شده و همونطوری همین افراد عادت کردن این چالش ها رو من چون هم خودم باش مواجه بودم هم با بقیه یکی که در اطلاعات بودم سعی کردن در کتابم بهشون بپردازم تا حد ممکن و برای هر مسئله راکاری ارائه بدم که به ارحال بتونه این عملگرایی عمل و عمل کردن و باقی موندن در این سبک زندگی جدید رو راحتتر کنه. درسته. <تصفيق> جاب آقای قهرمانی من توی کانال سمتوسوی ذهنی خودم در مورد اون پادکست انسان طبیعت فاجعه حول محور محیط زیستی خیلی چرخی و این موضوع برای خود من خیلی جذاب و بل بود از چار پنج سال گذشته و مهمترین چیزی که من پیگیری میکنم این که خب چرا صدای کسانی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن شنیده نمیشه و چه کار باید کرد برای این موضوع شما توی کتابتون یا توی تحقیقاتی که انجام میدادید در مورد این فراینده های محیط زیستی و آسیب هایی که حالا مدل کلن پرورش دام و حیواناتی که به عنوان خوراک دامی استفاده میشن چه آسیبی میزنن و چه فراندهی داره اتفاق میافتاد پرداختین در مورد این موضوع ریسرچی دارین در موردش با ما صحبت کنید بله قطعا اصلا یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد من در این سبک زندگی باقی بمونم و اون رو اصرار داشته باشم که ادامه بدم همین مسائل کلنگری کلنگری بود و همین دیدگاه کلنگری که در این سبک زندگی وجود داره در رابطه با معتزیت که اصلا یک فصل از کتاب من در در همین رابطه هست و کتاب من این به ترتیب در رابطه با فصل اولش که تغذیه و سلامتی است فصل دوم اقتصاد فصل سوم معتزیت و فصل چهارم حقوق حیوانات و مسائل اخلاقی اینه که 100 درصد همه جنبه های مختلف شیوه زندگی ما مهمه ما, فقط ما نباید فقط محدود بشیم به یک بود اما خوشبختانه گی و خانگی آخاری تمامی این چالش ها رو براش راکار داره یعنی راهکارهای خیلی ساده که راهکارهای خیلی عملی و خیلی موثری هم هستن که حال الان هفت میزیار جمعیت در دنیا بطعاً پوچکتای تصمیماتشون هم تأثیرات خیلی قابل توجهی داره بر, بر دنیا چه برسه به تغذیه که دیگه اصلا چیز نامحسوسی نیست این کاملا محسوسه و آماری که در این رابطه وجود داره محاسوباتی که انجام شده و اون که ما واقعا در دنیا داریم میبینیم همه خودشون یک سهه بر این مزایای تغییر سبک زندگی به سمت گیاهخوری. درست استش خب جواب قهرمانی با توجه به اینکه ما به دوستان و همراهان کانال قول دادیم که پادکست ها رو زمانش رو کوتاه‌تر کنیم به واسطه اینکه بتونن خیلی راحت‌تر ارتباط برقرار کنن من خواهشم از این هستش که اگر شما موافق باشید با توجه به اینکه خودتون متخصص هستیم در این زمینه یک سری مباحثی رو آماده کنیم و ما بتونیم به صورت سریالی وار یه سری اطلاعاتی که به صورت کلی شما صلاح میدونید که در اختیار دوستان قرار بگیره که نشأت میگیره از تحقیقاتتون و همینطور تجربیت شخصیتون این وقت رو برای مقایل بشید و برای دوستان تا ما بتونیم از این تحقیقات شما و تجربیت شخصیتون استفاده کنیم و اینکه اگر شما معافق باشید من تایتل پستای شما رو هم با همین اسم کتاب فارسیتون خوردار نیک اونجا منتشر میکنم و همینطور سریال وال یک و دو رو اونجا پیش میره بله کاملا معافقم با شما روش خوبیه بسیار عالی خیلی ممنونم از لطفی که کردین و وقتی که گذاشتین و امیدوارم که دوستان دیگه ای که در حوزه ای که فکر میکنن به درد فضای کانال ما بخوره و قسمتی رو پوشش بده متخصص هستن با ما در تماس باشن و خودشون رو هم مؤثر و تأثیر گذار و سحیم بدونن تو این جریانی که به عنوان جریان سینرژی ما داریم بهش نگاه میکنیم دوستان دیگه هم میتونن به همین شکل با ما جوین بشن و همکاری کنن بازم خیلی متشکر از وقت و اطلاعات دانشکی که در اختیار ما قرار دادید جواب قهرمانی و خیلی من شخصا خوشحالم که شما رو در کنار خودم دارم متشکرم از دو دوتون خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم و فعالیتهای خوبتون و خیلی سپاس از دوستتون و وقتی که در اختیارم گذاشتید. می میکنم، خیلی ممنون، خدا نگهدارتون باشه متشکرم خدا نگهد